طبقه سوم نویسنده و کارگردان بیژن میر باغری تهیه کنندگان، علیرضا قاسم خان و مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر موسیقی بهرنگ شگرفکار محصول سال 1387 بازیگران مهناز افشار اینجا نمیتونی بخوابی. به حال اینجا نمیتونی بخوابی. پگاه آهنگرانی. حمر گرفتن تو رو خودی تلفن تلفن شما کجاست؟ مرداد زیایی. با قاضی کشیک هماهنگ کن بیاد بیمارستان. منم خدا اومیرسم. پاشا رستمی. چی همسایه‌مون اومده بودم ببینم چه خبره. دختر جوانی با صورت خابالود و بیهار و سرکی یهوری شده و حلقه زده به دور یه ملافه سفید او از ملافه آویزانه و داره پیچ و تاب میخوره همون دختر رو میبینیم که توی یه اتاق یهوری روی تختی دراز کشیده و خوابیده. با صدای آیفون چشمشو باز میکنه انگار داشت خواب میدید ]criptor. همزمون چهره زن جوانی رو که توی یه آپارتفان دیگه خوابه و با صدای موزیک و آیفون چشماشو باز میکنه میبینه باز همون دختر جوان آویزان از ملافه داره تقلا میکنه پسری به طرف آیفون میره عمید. دختری مانه میره میشه شد؟ چرا همین از پله ها پایین میره از پنجره راه رو به خیابان نگاه میکنه ماشین پلیس و پولیس ها در ساختمان دیده میشن دختر جوان از روی تقنیم خیز میشه به نقطه خیره میشه باز کن. کن نه زنی میزنن به خطورا بیچشی میکنم تو دارم اونها رو روی شده سویی؟ میدونن باید سهرماشو پولیس اومنه خیلی خواهد با رو خودم جواب بگم رسته چه توالون ساده است، الان جمعه باز هم تصویر آویزهی از ملاتوف برای تداوم میشه این دختر متوهمه بقیه دختر و پسرها در حال تکاپو و فرار هستند دختر جوان ثابت توی نقطه ایستاده پسری به طرف دختر جوان میره اونو به سمت تراس آپارتمان میبره اونجا از ملافه که به هم گره زده شدن یه تناب بلند درست شده که یه سرش به نرده فلزی تراس بسته شده و دنباله تناب به طرف پایین کشیده شده یه پسر جوان داره خودش رو آویزون ملافه میکنه که بره پایین حالا دختر جوان آویزون ملافه شده همزمان زن جوان رو در طبقه پایین تر میبینیم که خواب زده شده و نیمخیز میشینه روی تخت دختر جوان همچنان از ملافه آویزونه اون داره سعی میکنه کف پاشو بذاره روی لبه نرده فلزی تراس طبقه پایین بالاخره موفق شد زن جوان خواب زده توی اتاق خوابش لیوانی آب میخوره نفس عمیقی میکشه از تخت میاد پایین میره طرف آشپزخونه. کلید لامپو میزنه از پشت شیشه های در شیشه ای آپارتمان سایه افرادی که از پله های ساختمان بالا و پایین میرن دیده میشه. دختر آویزون از ملافه تلاش میکنه خودشو بندازه توی تراس طبقه پایین. موفق شد. دختر به طرف در شیشه تراس میره. به داخل آپارتمان نگاه میکنه. اونم سایه ها رو میبینه. میترسه. خودشو میکشونه به یه گوشه تاریک تراس. زن جوان صدا رو میشنوه به طرف تراس میره یه تلفن یه تلفون گرفتن تو تلفن شما کجاست میره پشت پنجره میبینه که پلیسی روی لبه جدول نزدیک ساختمان نشسته. برمی‌گرده طرف دختر. سلام خشته طور خطا. ماشی. الو ماشی؟ بله. سلام خانم می‌تونم با ماشی صحبت کنم؟ الو الو ماشی. من ببینی همه رو گرفتن خون نوشین بودی. یعنی چی گرفتن؟ نگارو گرفتن؟ همین الان کرده که شدید نمیدونم مامان علو مامان یکی زنگ نزده علا ازنا تویی شما کجایی؟ ما کردی؟ کردیم تو کجایی؟ فراک کردیم ببینیم بزر کنم دختر در حنی که داره صحبت میکنه توی کیفش دنبال چیزی میگرده زن همینطور به دختر جوان خیره شده دختر جوان همچنان مشغول شماره گرفتنه بلند میشه میره طرفه در آپارتمان با احتیاط در رو باز میکنه از پله ها میره بالا در آپارتمان قفله دوباره میاد پایین بیری داخل آپارتمانی زن جوان ببخشی دو خود. دختر کپشش رو در میاره ببخشی دو رو دو علی سلام گوش مهمونی رو گرفت نوشی نمیتونی بیایی دنبالم داخل یکی از طوللای شهر پسر جوانی در حال رانندگی با عصبانیت گوشی موبایلش می رو میدازه رو داشت بود دختر توی کیفش دنبال چیزی میگردی همی که... زن همینطور به دختر نگاه میکنه زن کشوی کابینتی رو باز میکنه و بسته سیگار بیرونه به دختر نگاه میکنه حالا زن با لیوان آبی در دست به طرف دختر که روی مبل خوابیده میره لیوان آب رو میز میذاره اینجا نمیتونی بخوابی. جاش فرق نمیکنه. ولی یه جایی اسمش بخوابید دیگه. به هر حال اینجا نمیتونی بخوابی. لیوان آبو و رو میز و دستشو میزاری رو پای دختر و اونو تکون میده و میگه: چه خوردی؟ آب‌پرس. خوردیم. اگه لومو نمیدی. داشتین چه کار می‌کردین؟ دختر با تعجب به زن نگاه میکنه مهمونی بود دیگه خالبت بیشتی نفر سه بقیه تو مهمونی میکنه؟ از چرا فرار کردیم بینم که با به اصول دی پلیس من زن جوان میده گوشی تلفن رو برمیده و میاد طرف دختر شماره خونتون رو بگو دو دو چهار سیس من چه میدونم همیشه اونا زنگ میزن شماره نمیدونم من وقت کار دارم یه دکبر رو میزنم و تلفنم میگه دی دید دید دیو میگه دخترم کجایی؟ من میگم شما کجایی؟ اونام میگه خونه گفتم شماره بس به خودم بگیرم گلم کار نمیکنه. کنه میگن یعنی کسی که شماره رو تک تک افزن خیلی باهوشن این هفته هم استثناء هلو ماما من بیرون بودم بعد بارون و مدخیست شدم اون وقتی خانم خیلی هلو هیچی که توش نیست گفتم که نیستن حالا چه اسرایی داری من برم بذار این یارو بره خودم میره زن میشینه کنار دختر. زن بذار پدر مادرت بیان دنبالت پنج ساعت طول میکشه تا برسن شما حالا زن بذار اونجا همشه تو موبایل کوفتیه؟ حال تو بهتر کنه. مسکن داری؟ زن بلند میشه. یه لیوان آب به دختر میده. تو نمیتونی اینجا بمونی. انقدر حواست هست که آدرس خونه به راننده یا آجانس بگی؟ کلید نداره. اونم بالاست. زنی جواب بلند میشه میره طرف اتاق اسکناس اسکناسا و چک ولو شده روی دراوه رو میریزی تو کشو. میشینه رو تخت صدای کی بود؟ زن جوان میره در تراس رو باز میکنه من کجا؟ پارجه تو صدای نشنیدی؟ یه تصویریه مردم نمجره یادم نمیام کسی دیگه هم باید بوده؟ خیلی آوام بودم مرد دیگه کسی نیست انظرم کسی که باید پریده باشه پایین تنها بودم آره تنها بودم پس این از کجا بود؟ شبه همشه یه صدای نالدهی میادی شاید محشوقی باشه که تو کموت خواهی میشگرم زخرف نگو چرا؟ کار خوبیه که یه گناه جزا حالا گناه در بگو یارو بیادی تو بکش برو بیرون کجا برم؟ یه کار نصف شبیه اومدی تو خونه من که بزرم خرش کموت میخواد بگی کجا برم؟ هر جا برو بالا شادی که از اون ترست اون کموت آیین شده باشه بلنشه برو بیرون ببینم؟ برو خدا الان اینه تو تو خی پلیس متوجه روشن شدن لامپ راهرو ساختمان میشه. خانم خانم خانم خانم, خانم تو خدا، خانم طور خدا. واسه این توی خیابان دم در ساختمان پلیس ایستاده. ماشینی با چراغ روشن به اونجا نزدیک میشه. دختر میره طرفی در شیشه‌ای ساختمان. سایی پلیس کلاه پشت در شیشه دیده میشه توی خیابان یه ماشین که رانندش همون پسر جوانه توی تونله به ساختمان نزدیک میشه با دیدن پلیس به راهش ادامه میده میره دختر برمیگرده بالا پشت در آپارتمان زن جوان زن جوان از داخل آپارتمان میاد طرف در گوشی تلفن حالتون اصلافی جا اومدن حال کردم اینقدر وضع تو خراب بودی که معمولم بذاشتن مثل سوس کمتون در رفتید شما حسن داخل ماشین با تحجب تلفن رو قطع میکنه زن میره طرف در دختر رو میکشی توی آپارتمان. شیفی زدی دیگزدی یه بست دست ملتاق از پرد میکنه طرفش برشی خودتو تا اینجا بگی همون کشی صورت تپاک میتونی امشب اینجا ببینی فقط برو تو ملتا خرفی دختر میره سمت شوی از رو دختر جوان یه لنز رو از توی چشمش در میاره شد دختر داره روشویی رو تمیز میکنه نمیخواد تمیز کنی گفتم نمیخواد تمیز کنی یه میخواد تمیز کنی مهم نیست ببیرون شده این ماشین خودش والمی سایه ها. این سرباز هنوز هست. در به پنجره نرو. الان می تونم شو یه سرباز نباشه، نصف زحمت می کنم. ان شاء الله تو بهتر می‌کنه. یکم آبو. دروازه کمرو تو تراس. پسر جوان دندعق به ما نزدیک میشه. از دور میبینه پلیس هنوز اونجاست موبایلشو رو ولی دوباره اونو مینداه رو داشت بود دختر دمه در تراس رو به بیرون ایستاده زن جوان پشت سر دختر با فاصله امگین ایستاده و به آواز خوندن دختر گوش میکنه for me thing تو سرما می‌خوری مامان نشو دیگه دلم خود سرما بخوره اصلا چه اهمیتی داره بردا که قراره نیست بعد ببینی یا برو بیرون یا بی تو هوا سرده درو ببند حالا شده جلوی پنجره وایسی ببینین که بیرون نگاه کنی در ادوازم من نسوزم من احتیاج به طرح همون ندارم این یارو پسر عوضی همون که به سنگ زدن بهم گفتیم مهمونگر رو نرم آ ولی فکر کن یک ست باحالی جایی باشه تو اونجا نباشی زن از توی کمد یه لباس در میاره فکر کنم فقط همین یه لباس هم باشه بیا اینجا عوضش کن وای؟ چه لطفی اول منو بیرون انداختیم حالام لباس یواش یواش دارم آشقتون میشه نوشین نگفته اود همسایه به این نازنینی داره شما سن ما بودید چیکار میکردید زن یا در میاره و میخوره زن داره سیگار میکشه و به دختر گوش میده دایم دارم به اون بالا فکرم کنم معلب بودن خیلی حس خوبیه میترسی نزداش میگه که دستم امویل کنم با اون پسری که تازه آشنا شدم اومدم اینجا نفهمیدم چی شو در ره. من بهش گفتم بیاد اینجا میگفت اسمش امیره همه با اسم جعلی میان جلو سری سریم سر اصل مطلب با کی هستی ولی یکی اینطوری نبود تا حالا شده واقعا یکی رو دوست داشته باشی آدم نمیده عشق اولی مهمتره یا دومی میکنه میگن کاملتره وای تو این عکس خوشگلی چقدر این مدر مویا بهتون میان دختر قابع اکس رو بر بیندره چشای خشکه. لبخند ملی زن به دختر خیره شده ولی یک تو چشاتون هست که خیلی خواستن این میکنه من اگه صورت شما رو داشتم اگه صورت من داشتی چیکار کار میکردی؟ چرا یادم نمیان؟ بودم پروازیم کار نمیکنه. کنه پای دیگردم شانس بیشتری باستندگی کردن داره ظاهرا تنها زندگی میکنید نه؟ حتما خواستگارهای زیاد انتخابای متفاوت خوشکله نه؟ فقط با صورت من همین کارو میشه کرد خودش یه دنیاست دقیق همه چیزه دختر قاب عکس دیگه بر می داره طرف هنو هست یا یه داستانی تموم شده جوابتون نمیدم برای که دیگه سوال نکنی دوست داشتی جایی من بودی یا برد کلی درد بکشی به خاطر همین حصولی من نداشتی من واقعا هم عذرت میخوایم دردم داری؟ مدام نه بعضی وقتا شبای دیگه چی کار میکردی؟ کسی میمومد پیشتون؟ شبایی دیگه همینجوری درد خودمه از پدرام فقط هم یه چیزش برام برسه سیده. برای اینکه دردی هایتون حرف بزنید من همیشه همین کار میکنم باست همین همیشه دارم حرف میزن راجب آرزوها چیزهایی که بعد بشه نمیشه چرا نمیخبی؟ روم اون کناپه هست و اون اتاقه میتونی بخبی اگه گرفته بودن هم این کناپه رو هم نداشتن این اتاق بود با دیوار سیمانی یه مونکهت. میگم دیدید وارد بازی من شدی رجبهخویید حرف زدی انقد میگی که شبیه هزیون میشه دیگه نمیدونی چی مزخرفه چی نیست زن میره طرف اتاق اتاقخواب دختر میره سمت کاناپو دو مامور پلیس هنوز هلوهش ساختمان دیده میشن پسر جوان همچنان توی ماشین نشسته دختر روی کاناپه خوابش میبره زن اما روی تخت بیدار نشسته زن میاد طرف دختر میبینه خوابه دختر چشماشو باز میکنه نوالی یکی تو سرم داد میکشید حالا داره ناله میکنه مثلی که شما هم صدا ششنیدید شما چی؟ شما صدای تو سرتون نمیشنوید یه صوت ممتد که گاهی موقع کنده گاهی تند زن بر میگردی طرف اتاق خواب پسر جوان داره شماره میگیره دختر چشماشو باز میکنه بلند میشه این پسر جوان تلفن رو قطع میکنه گوشی رو پرت میکنه رو داشت با حرکت میکنه و میره بیشنوی دختر سرشو گرفته تو دست زن جوان با حال خاص و عجیبی میره تو فکر دختر توی آشپسمون است روزا چی کار میکنی؟ حال استمراری اینچه بابا اینه بزرگتر ها به من گفتم. نقل ترسویم که فقط حرفشون میزن شاید زیاد شده باشی که میگن ما که سر حرفان باشدیم این چی نشدیم. شما حالش شده تعداد زیادی شیشه سبزرنگ خالی دلستر ردیف روی کابینت آشبازخونه است. اوضاع خونه چطوره؟ پولدار متوسط، بی و بیکس و کار مرفع بدبخت. بهش این دروب بفتا. نمیدونن اومدم خونه نوشی درس میخونی؟ مم. واسه امکانش نواز خودش امکانش چیه؟ محیط باستر ارتباط بعدش هم بیکاری و سرباری و سولا با نامید بودن راحت دختر میاد طرف زن میشه قهوه باست خانم درست کنم؟ دختر برمیگردی به آشپز خوه چه جاله اینا رو اینا همه رو خوردید؟ اینار رو که می خورم یه کم بهم آرامش میده وقتی مصرف میشن این رو درد نمی میخورن ولی کناره هم چهی خوشگل نه؟ زن میری طرفی در آپارتمان. در قفل میکن کلید رو از در بر میداری آب زیاد تو بدن باعث برای مغ میشه سر درده من ما خوردیم که یه حال دیگه بشین سر نردش ببخشید قهفتون کجاست؟ تو کابینتون گوشه من خیلی شبی مامانم مخصم خنده ها من نمیخوام مثل اون زندگی کنم واسه هم زیاد نمیخندم اون مثل بقیه آدم زیاد از زندگی خودش راضی نیست میگه از یه سنی به بعد زندگی بازارش کرده همینجوری ادامه بده هرچویش میگم فکر خودت باش اگه یعنی خواسته بودم سی سال پیش رفته بودم بهش میگن کجا مگه جایی داری اینجاست که دیگه هیچی نمیگه کار خونه میکنه جایی نداره من هم این بحثا رو ندارم ادامه نمیدم به چی فکر میکنی شرایط خودت هم میتونی بفهمی آره دیگه این هم وضعیت ماست داریم بایش زندگی میکن میدونی ماهی هرچی تونگش کوچیک باشه بیشتر تقلیم میکنه دلت نمیخواد این شهر تغییر بدی؟ نمیشه همینه دیگه تمام شب داشتیم گفتی ازش راضی نیستی ازی رفتیمش هیچ فکر کردی الان توی اینجا رسمی نیستی یه در رو گرفتن یه دن فرار کردن هیچ کس از حال اون یکی اطلاع درسته نداره الان وقتش به یه زندگی یه دیگه فکر کنی یه جای دیگه جایی که خود آدم بتونه تعین کنه بری از اینجا یعنی من میبرم ایت میره طرف دختر دختر وحشت کردی شوخی میکنید نه تو دختر باهوشی هستی مگه نگفتی نمیخوای مثل مادرت بشی همین الان داشتیم گفتی امکان نداره چرا؟ خودشی امکانه؟ یه زندگی دیگه همه چیزش دست خود آدمه؟ زن میره طرف تلفن یه آقای هست که کارا رو ردیف میکنه اگه خودت بخوای کارا رو انجام میشه مثل بقیه دلت میخواد عاکشونو ببینی خیلیشون همسن سال تو بودن الان با اون چیزی که اینجا بودن زمین تو آسممون فرق میکنن مهمتان از همه انتخاباشونه دیگه منتظر نیستن که انتخاب بشن من تو رو خوب میفهمم نه تو همه اونایی که اون بالا بودن بهتون حق میدم شاید این بهترین راهی که انقدر بخورن کلشون گرم بشه تا چیزی نفهمن رفتانت با ما خودم هم میان بهت سر هلو. سلام هلو. میتونی بیای اینجا کلیده اینجا رو که داری آره را بیافتون سکوتت میتونه معانی مختلفی داشته باشه. از چی میترسی؟ هر انتظاری اینجا ازت دارن اونجا هم داره. زن داره ها رو میکشی فکر بد نکن. اونجا دیگه دغدغه‌ای چیزی رو نداری. زندگی تو یه هتل یه نه این کاناپه، نه اون تو باز حتما تو اون حسینیه کلت به این چیزا فکر کردی. مگه بهت نگفتن حالشو ببر. اینا مثل بقیه کارا میتونه یه دوره باشه. بعدش هرجور که تو بخوای. دختر وحشت کردی و کنار ستونی پاهاش سوست میشه و می‌شینه رو زمین. زن میره تو آشپزخونه دختر به سرعت گوشی تلفن رو برمیداره زن متوجه میشه یه طرف دختر زن گوشی رو از دختر میگیره به پسر جوان زن زدی پسر جوان در حال رانندگی با نگرانی شماره رو میگیره تلفون خونه ی زن جوان زنگ میزنه زن دو شاخه تلفن رو از پریز بیرون میکشه باز کنن رو میکنم جایی من ظرفیتت جا تر از این حرف است باز کن رو میگم باز کن باز کنن داد میزن اما یه چی بشه؟ کسی تو ساختمان نیست؟ یه سربازه که اونم تو کچه است به حرف گوش نکردی؟ برای چی بهت برخورد؟ کجا گذاشتیش؟ مگه نگفتی دنبال یه جایی بازتر میگردی؟ مستقی کجا بری مگه دنبال یه زن دختر رو پرت میکنه دختر میفته کف سالان به توی خیابان به ساختمان نزدیک شده زن با وحشت میاد طرف دختر دختر بیهوشه زن آرام میزنی تو صورت دختر زن وحشت کردی. نبض دختر رو میگیده. زن با وحشت دومل صدا میگرده از کنار دختر بلند میشه آرام به عقب میره پسر توی ماشین به موبایلش نگاه میکنه بعد حرکت میکنه زن از پاش لیوان آب خالی میکنه آب و می پاشی رو صورت دختر دختر چشماشو باز میکنه پاشا قبلا از این اده زیاد دیدم چرا سر شب نرفتی دیگه نمیخواستم این کارو بکنم دوباره وادارم رو کردی به چشم یکی نگاه کنم و بهش بگم انداختمت بیرون بری سعی نکردی بری دختر یواش یواش بلند میشه او وحشت زده و حراسانه زنی قرص میخوره لامپو خاموش میکنه میشینده رو صندلی توی آشپسخونه دختر از سالون پذیرایی مولی تمیسانی به زن نگاه میکنه خیصت زود قبول کنم خواهش میکنم از سر شکرزه ها جور گیونه در حالا بذارم بیری کیچی بشه زن مسترب اما بی اهمیت به دختر هیچ واکنشی نشون نمیده. پسر جوان به همیخته و ناراحت توی خیابان همون حول و هش در حال رانندگیه. زن یه لیوان آب میخوره. یه لیوان دیگه گوشیای تلفن رو برمیداره از کنار دختر که کف سالن افتاده و داره گریه میکنه رد میشه. میره طرف یه در میره تو در رو میبنده دفتر میره طرف تراس در رو باز میکنه یه تناب باریک پلاستیکی رو از کف تراس بر میداره میاره تناب و حرقه میکنه میندازه به دستگیری دری که زن اونو بست دنباله یه تناب میاره چند دور میپیچونه دور ستون نزدیک اتاق اونجا محکم گره میزنه یه صندلی هم میچسبونه پشت در و بزن میگه که جا بیاد هر تو زنده‌گی پسر جوان ماشین و دور و نزدیک پشت ساختمان نگه میداره و با این میلی فلزی که توی دستش دیده میشه از ماشین پیاده میشه و میره طرف یه ماشین میلی رو میکوبه به شیشه ماشین خریصا میان طرف ماشین دختر میره پشت پنجری آشپزخونه و به خیابان نگاه می‌کنه پسر جوان داره میان طرف ساختمان شماره میگیره پسر نگرانه دختر میره طرف پنجری آشپزخونه. خیردین یارو را تو این در باز کن یارو کلید کلاوشو می‌کنه توی روی در بهت گفتم کلید داره. همین الان که پیداش بشه، این‌قدر تو نمی‌تونی فهم الکی خیلی راحت نمیشه با آدم بازی کرد. تالا 100 تا گنده رو بازی دادم تو که سهلی تو زنده مردم بودن. میاد میره تو اتاق به زن داره دنبال کلید می‌گرده. یه گوشی موبایل توی کشو هست. اونو برمیداره. آنتن نمیده. میره توی تراس. بیفایده است. نمیتونه شماره بگیره. تو این در باز کن. میگم این باز کن. میاد توی سالن. <تصفح> دختر حالش بده. میره طرف دستشویی و سرصورتش رو میشوره اینجا معلوم میشه این آپارتمان دو تا سرویس بهداشتی داره صدا در نمیاد داری میمیری؟ برمه زندهی کسی سیفا میکشید صدا ما پیشنوی که پا هیچ کاری نمیتونی بکنید صبح که به شهر دلم به خواهد با در بسته دره, دره می‌چی میره. دله تله نمی‌خواد که اینجا رو آتیش بکشم و جهرت این کاران هم داریم لبی من دیگه هیچی برای اهمیت نداره الا خودم من گوشم پره از این حرفا با. دیوون بازی تنها کاریه که میتونم انجام بدیم و کسی هم به کارم میکنی نکشته باشه با شنیدن صدای آیفون میره طرف در دختر جوان هم با شنیدن صدای آیفون وحشت زده و مردد میره طرف تراس یه وشکی یه نگاه میندازه بیرون چیزی پیدا نیست. دختر میره طرف یکی از اتاق خوابا از اونجا میره روی تراس با ترس به بیرون نگاه میکنه یه دیوار باعث میشه پسر رو که کمی این برتر پشت در ساختمان نگران ایستاده نبینه. دختر با ناامیدی برمیگردی توی آپارتمان میره گوشی آیفون رو برمیداره. پسر دم در متوجه میشه کسی آیفون رو برداشت اما جرأت نمیکنه حرف بزنه. دخترم گوشی به دست با ترس و نارتی منتظر صدایی از گوشی آیفون بشنوه توی خیابان ماشینی به ساختمان نزدیک میشه پسر میترسه و آرام از پشت درد و طرف خیابان دمماو تند میکنه و میره. ماشین به در نگه می داره یه آقا و خانم میانسال از ماشین پیاده میشن به دوربر نگاهی مینداند آقا کلیدش رو از جیبش در میاره و میره طرف در. دختر هنوز با ناامیدی گوشی آیفون دستشه. گوشی رو میذاره سر جاش پسر جوان از دور ایستاده و به در ساختمان نگاه میکنه می بینه مرد و زن مسن وارد ساختمان شدن. پسر حرکت میکنه به سمت در. زن اونجا توی سرویس بهداشتی کافه دستش رو موش میکنه و چند بار اونو باز بسته میکنه انگار دست راستش دچار اسپاس شده. صدر کن صدرت رو بیار پایین کلید رو چی کار کنی؟ بری من اینجا بمونم ات ارس اون یارو میاد نجاتت میده همون زیدت کاری هم به کارت ندارم کلید این حقه من نیست که به تو پناه دادم این در باز کن هوا. فیکاری حقم بود اون بساتون مهام بخرو بدون خیابوناکران تری هاشین ما ماجرا کار من نبود راستای کسی تو این ساختمون نیست انقدر نبودی که نشین فکر می‌نستی ساختمون خالیه نشین غلط کردی همینه دیگه یه عصبانی که تو طبقات پایین زندگی میکنه. روسش گرم گرم که بشه چرا این نازنده پلیس من اینجور سر صداها رو بالای سرش شخصیت شنیدم هیچو شب خانمشو من برای اولین که از این کارا می کنم خودت خوب دیدی چه کاری کثیفی کردی حالا شده این مرتبه سننجور کنی الافی تواله به توین شده چی نسیبیت ها؟ مدال شجاعت چه افرونده محترم؟ زن میره طرف پنجری سرویس بهداشتی که به سمت حیات خلبت باز میشه دخترم از پنجره اون یکی سرویس بهداشتی در حال سرکشیدن به داخل حیات خلبتی دختر بر برمیگرده طرف سالون همیس همه اون کسافت از بنگی ها درمیخوایی تو استفاده کنی منگیم مغز خری که نخوردیم منگیم تو با این سیدار حال نمی کنیم زن جوان پشت در با لبخند میخواد چیزی بگه ولی نمیگه دختر میاد توی تراس ملافه نصف نیمه هنوز اونجا آویزون رو مونده از پنجره داد نمیزنی اگه بیان کمکه چی داری بهشون بگی فکر میکنی حرف منو قبول میکنن یا تو رو خفه رو صداد رو عصابمه من هر کاری کرده باشم آدم فروشی نکردم پسر جوان هنوز دوروبر ساختمان میپلکه. مرد مسن رو میبینه که از در میاد بیرون و با حراس دوروبر خونه رو نگاه میکنه. پسر جوان نگران میشه. دختر میاد طرف در سرویس بهداشتی. داخل خیابان پسر جوان از دور میبینه که مرد مسن دم در ساختمان در تلفنی صحبت میکنه. دختر جوان داره دنبال کلیدا میگرده. اون تلفن بزن. بگرد. شاید کیلیدو پیدا کنی اگه پیدا نکردی به حرفای من خوب فکر کن وقتی روزگارت شده که به همه چیز داربرت عادت کنی میتونی به آینده فکر کنی خودت داشتی چی میگفتی از این رفتار بار میکنی انگار از آقابت کارت بیخبری دست بردار تو که نمیخوای آدم فروش باشی برای منم باره اول سخت بود مثل همه آدم دنیا حتی فکرشان من آزار میداد اما الان به همه سخت بودن خودم میخندم مثل همه کار دنیا باره اول سخته. دختر با یه سوحانه ناخون میره طرف در آپارتمان اون داره دنبال کلیدان میگرده یه دسته کلید از توی کیف زن پیدا میکنه میره طرف در دختر داره عشق میریزه زندگی خودت رویا ساخته بودی فکر میکنی بیرون اون در آزادی برای چه کسی اهمیت داره که تو کی هست از دیگه نمیخوام بشنو این خیابان پسر داری میبینه ماشین پلیس به مرد موسین که دم در ایستاده نزدیک میشه مرد با دست به داخل ساختمان اشاره می‌کنه و پلیسا میرن طرف ساختمان ده ده دختر همچنان داره دنبال کلید می گرده. دختر به دستگیری یک کموت فشار میاره اما باز نمیشه دختر میره طرف آشبازخونه یه کارد میوه خوری میاره چی کار داری میکنی؟ همه زندگی من ریختی به هم با اون قفل کمود رو باز میکنه واقعا فکر میکنی داری زندگی میکنی؟ توی کمد پر اسباب بازی و عروسکه دختر به یه توپ دست میزنه زن صدای آواز عروسک رو میشنوه و مثل بچه ها لبخند میزنه. دختر با تعجب به این همه اسباب بازی نگاه میکنه. زن پشت در سر میخوره و مچالی میشینه رو زمین. دختر اسباب بازیها رو میزنه کنار. یه بسته عکس میبینه. دختر با کنجهاوی شروع میکنه به نگاه کردن عکسها. ها. اخ خیابان پسر میبینین یه ماشین پلیس دیگه اومد دمه در ساختمان. زن جوان انگار سردش شده. این چیه؟ اینا راستن؟ میتونست همش دروغ باشه دختر با تعجب به حرفایی زنگوش میکنه ولی راسته غیر از تو فکر کردی چه چیزی ازشون گرفتی؟ دنیاشون عوض کردم داری چرت میگی؟ دقا برشون یه تصمیم گرفتی خواهید یه زنی، بینید داری چرت میگی؟ کیفیتش چه فرق میکنه؟ یه جور زندگیه به چه؟ خدایی؟ دانیاشونو تغییر دادی، سرنوشتشونو چی؟ تو کی هستی که بخوای منو مجازات کنی؟ به خودت نگاه کردی؟ دانو شده با یکی از از این نزدیکی کنی؟ یا ایو یه باش بچه قد کشیدم من بچه که بچه نداری؟ اون مارده بلیز اینکه به دنیا بیاد همون که پشت در بسته قرار میگیرم یاد بچه میفتم که مادرش باعث مرگش شد. وقتی مرد، همه وجود من با خودش برد. این درونم بود که مرد. بیرون از من زندگی بود. شخصی از این چی میتونه باشه؟ جز خودم یه تن باقی ازم مونده که داره از درد میترکه. هیچی ازش به وجود نمیاد جز زنگ. عکسها از دست دختر پخش میشه کف سالون یا عکس عکس دختر جوان دختر کنار عکس به زمین میفته این در باز کن میشنوی؟ دارم خفه میشم در باز کن این در باز کن میدونم از من بدت میاد چی میخوای از من؟ در باز کن کلیدو بهت میدم میشنوی؟ یه خیابانی آمبولانس میاد و دمه در ساختمان من نگه میداره دختر به سختی از زمین بلند میشه اون حالش بده با دست صورتشو میگیره صده چیه؟ به سختی میره روی کابینه تا آشپسخونه. از پنجره به بیرون نگاه میکنه پسر جوان شمانه میگیره یه لحظه متفجه سایه پشت پنجره میشه کسر داره تو این شلوغی آروم آروم به در ساختمان نزدیک میشه. دختر میاد، عکس‌ها رو از کف سالن جمع میکنه جناب امیری رو بگید برن داخل امیری داخل رو دختر میره دمه دمی دست از اون پشت بازن حرف میزنی به در از این نکن صدای چی بود؟ پلیس در داره فهمیدم این نفر جان مونده. گومادان دو ملیش. خلیدا نت مخجال به توجه کنی. فکر کنم اگه بیام بالا کی ضرر میکنه ساکت شو. برای چی؟ من بدم نمید بیام بالا. سنده تو بیار پای. چرا؟ بایست خواهده رو نکس ها اید فقط عکسن چیزی رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟ من ثابت می‌کنم. هیچ محکمی حرف تو رو قبول نمی کنه. جوونی، مستی، به زود پریدی خونه من مالک خونه رو حفظ کردی قلبشو من گوشم پارو از این حرف جان سان جلالی. جان تشمی پسر جوان تا دم در ساختمان اومده ولی پلیس دم درو گرفتن پسر رو از اونجا دور میکنن دختر اومده توی تراس داره به دم در نگاه میکنه یه پسر جوان آش و, و خونین دم در روی زمین افتاده دختر برمیگرده توی سالان چرا هیچی نمیگی؟ پسرنا این دینه که حرفی نزنی چرا؟ من باید بدونم چی شده هیچی نگو یه دو پایی دارم میرن و میا. دختر دوباره برمیگردی توی تراس میبینه برانکارد و میبرن طرف پسر اونو از کف خیابان برمیدارن و میزنن توی برانکارد بر میگردی توی سامان در تراسوم میبنده. دختر حالش بده. اون وحشت زده است؟ چی شده؟ صدای منو می یکی او افتاده کی هست؟ چیزی نبارد من چی بهترین در باز کنی پسر جوون میبینه پسر زخمی رو میزنن توی آمبولنس پلیسا میرن داخل ساختمان و از پله‌ها ها میرن بالا دختر تردید داره اون وحشت کرده پسر جوون میبینه آمبولانس حرکت کرد که بره کمی جلوتر یه تاکسی آژانس نگه میداره مرد جوانی از ماشین پیاده میشه. مرد با دستپاچگی رانش رو کش میکنه به طرف خیابان پشت ساختمان. پسر جوان میره دنبالش. دارن مرد میسوزه. دارت واسه خودت بسوزه. واقعا اگه چیکار می از زندان که بیشتر نیست. فکر میکنی با این سابقه تو آینده چیکار میخوای دختر جوان مردد وسط سالن به سایه پلیسای پشت در شیشه آپارتمان نگاه میکنه. دختر میره طرف در دستشویی، زن در میشینه رو زمین سرشو میچسبونه به در دستشوی دخترم سرشو میچسبونه به در ساکت باش باش درم باز کن گیری دو بده صدت هم بیار پایین کیو هستم؟ پولیس رو چند نفر دیگه این در باز کن او نمیدونه یکی توی آپارتمان هست دختر داره اشک میریزه باز کن این در رو نمیتونه در باز نکنیم چرا میشه؟ کسی اینجا نیست در رو باز نمی کنیم شنیدن باز کن این درو ببینم چی میگن اینجا باش هر باز کردن باز کن باز کن باز کن باز کن باز کن لغان در دیوونم تو الان در نیست که بتونی خوب ترزی و تحلیل کنی گوش کن ببین چی می‌گن صدای من می‌شنوی بیا نزدیکتر و حرفای من گوش کن پشت دری آره بیا نزدیکتر اینجا سرتو به چسبون به من از این در نمیتونم برم بیرون تو هم از اون در خب من توی یه اندازه گناه کاری فقط جایی که تو هستی کم بزرگ ما نمیتونیم اون در رو باز نکنیم تو بذار من بیا بیرون قول میدم هیچی بهشون نگم تو هم نباید بگی این تنها کاری که میتونیم بکنیم اگه نگفتی از زنداده اینجور چیزا نمیترسی من هیچی نمیگم تو هم حرفی نزم تو این شرط هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه. دختر مستعصد و نگران بلند میشی و شروع میکنه به باز کردن تنها همه چیز جلی من انجام چه؟ زن جوان میخواد بره طرف در اینجا رو مرتب کن سلگان یک جرفی نزنیم دختر شروع میکنه به جمع کردن اکسای کفی سالان شدم فکر می کنم از سر صدا متوجه شده باشید که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی افتاده تو حیات طبقه اول یه نفر از طبقات خودشو رو انداخته پایین حالش خیلی وخیمه تیم پزشکی انتقالش داد به بیمارستان من چیکو میتونم بهتون بکنم چون تو طبقه چهارم کسی نیست میخواستم اگه اجازه بدین بیام تو خوش دارید؟ دارید باقازیه کشیک کما هنگ شده اگه لازم باشه میام شب تایه میشه یه لحظه اجازه بدین اکثر رو رو تق و ملوفه رو میکشه روشون زن و دختر مشغول مرتب کردن وسایل میشن زن ساعت رو میزی رو کوک میکنه پلیس با کنچگاوی به داخل نگاه میکنه قضا شایی بری زیر زبانت اینجا این رو مرتب کن زن اجاقاز رو روشن میکنه و کتری رو میذاره روی شعله زن میره طرف در اتاقی که دختر اونجاست پرچی میگم خوب گوش کن پرده بیرونم مرهتم کن تو اون اتاق تا صدای زنگ ساعت نایمده از اتاق بیرون نمیای میفهمی؟ رفضیم خونم سلام شما همینجه باش مرموم خونم ایتیجه نیست بفرمید نه پایین تو حیات گریش شده وضعی مغایر. ما وضعی در شرایط موجود از همه ساکنین حاضر تحقیق کنیم امکان همه چیز وجود داره سوه خودکشی به نظر میاد چهار طبقه برای خودکشی کم باشه بله خوب در گزارش ها اومده که در طبقه چهار این ساختمون همون طور که میدونید؟ یه میهمانی بوده ظاهران یه عده میخواستن فرار کنن شما سر شب سر صداشون رو نشنیدین؟ خیلی اهمیت نداشت این روزا این چیزا طبیعیه همسایه طبقه چه چند وقت اینجا می چقدر میشنستینشون؟ چار یا پنج بایی میشه مستجرم؟ خیلی نمیشناسمشون حتما همسایه طبقه اولی بهتون گفته به حال شما بیشتر بهشون نزدیکیین. حتما بیشتر با اشنا هاشنایی پشتی که بیبرم صدایی حرفی حدیثی اگه میدونستم قراره یه روزی حساب پس بدم حتما تو زندگیشون کنجکاوی میکردم ببخشید اجازه میدین یه نگاهی به تراس بندازن؟ بله بفرمی پلیس میره در تراسو رو باز میکنه پسر جوان اومده در مدر ساختمان میبینه دوتا پولیس در اونجا از اونجا دور میشه پلیس توی تراس ایستاده یه دفعه ملافی آویزان رو میبینه زن جوان زیپه یه ساکو میکشه و اونو میبنده پلیس داخل سالن. شما امشب تو تراس رفت و آمد داشتی؟ بله. ببخشید. زن جوان میرسه و میاره با یه بلیط هواپیما. به چه منظور؟ شما که تبعقا ندارید نیمه شب تعدادی آقا بنا به دلیلی وارد خونه بشن. میره در اتاقو باز میکنه. دختر جوان داری میره طرف کنه. از روی در آپارتمان پسر جوان از روی پله ها دختر رو میبینه داری. ولی دختر متوجه اون نمیشه دختر جوان حالش بده سلام. وارفته میشینه رو سنددی سلام همسایه طبق پایینه میگفت که تنها زندگی میکنیم خوارم هستن مهمان من گذاشتم چایی دم میکنیم جب ما تو را بیمارستان بودیم که تموم کرد عجب. علت مرگ همونطور که مستهزه رستی خمون ریزی شدید پزشک همراه مرگ رو تایید میکنن بله ایشون مرگ رو تایید کردن یه لحظه جذبه دی با قاضی کشی که همه کنین بیاد بیمارستان منم خودمون میرسون چشمار خودت کنترل کن حالا ماجرا فرق میکنن برای ما شما که دنبال علت می یه نفر مورد خانم. مسئولیتش به اوته تمام تمامعرض ساختهمه. چرا همه؟ اینکه ساکنه این واحد نبوده هیچ چیز هم در مورد مهمونی گفتین درسته ولی تو مشخص شدن علت حادثه همه مضونومنم چون در پیش ساختمون زندگی میکنین؟ بله در حال هر محکمه این صحبت و شواهد و کنار هم بذاره این حادثه هم نیاز به شاهد داره. ما که چیزی ندیدیم خواب بودیم اگه لازم کارت شناسی ما بهتون بله لطفا ببخشید. واقعاً در این شرایط میتونستید راحت بخوابید شما چرا همسایه‌تون میشناسین که سرسداش براتون همیت داشته باشه تازه اصولاً چه جور سرسدای مهمه روزی صد تا از این صداها شنیده میشه که همیت میده هم که خودشون این شما مسئول نمیدونن شما تو زندگی شخصیتون تون این چقدر فکر می کنید شما از ساکن طبقه 4 شماره موبایل ندارین فقط تلفون خونه رو دارم زایران که نیستم نم سرباز یکی پله درنخت ها بگی کنم یه سرباز از پله ها میاد بالا دختر جوان داره گرگیم بکنه هی آقا باشتا بینم چیکار بکردی آنجا ی چی همسایه اومده بودم ببینم چه خبره برو جوان ایسا پسر جوان از همه در دور میشه امیر شهرباف ما میتونیم ازتون بخوایم برای تکمیل این گزارش شما به اداره ما تشریف بیاریم بله حتما من. خیلی بنام بای جزی زن دختر با سرعت به طرف دستشویی میره پسر جوان سوار ماشین میشه و حرکت میکنه دختر جوان روی تخت نشسته پلیس ها سوار ماشین میشن و میرن باشه رئیس، میام اینجا. اگه لازم شد با شما تماس بگیریم شما هم سرت اش بری شش، ممنونم که پسرموش. خداحافظ. پسر جوان کمی جلوتر توی تاریکی تو ماشینش نشسته. با رفتن پلیسا سرش رو برمیگردونه و رفتن شما نگاه می‌کنه. زن جوان از توی تراس میبینه که مرد همسایه داره خونایی روی زمین دمه در رو با آب و جارو میشوره زن برمیگرده طرف دختر دختر سرشو میگیره تو دستش حالش بده چه اهمیتی داره تو که نمیشنختیش فکرم قبلا تجربه هست که به کسی دل نبندی. تو همون مدت کوتاهی که دیدیش بهش علاقه پیدا کردی مهاهشون فرق داشت چون مرده اینطور فکر میکنی چرا اون چیکار میتونی بکنی همه چیز تمام شده حالا چی میشه مردو نمیدن به بادرش کی بودن چرا همشی داره خراب پیشه روزنم نیکی مرده چرا همشه شده دختر میره توی تراس از بالا میبینه مرد همسایه داره ملافه های خونی کف خیابان رو جمع میکنه دختر میشینه تو تراس میاد طرف زن زن دختر رو بغل میکنه سر دختر رو میگیره تو سینه تاام تو ماجرا داخل بودی شاید نه بعد می‌نرفتی پارچه من من چه شوگر نمی‌نام و سر دست من زمینه پام گر زمین به تو پناه آورده چرا اون پارچه ای می‌سپاره؟ دوباره نشد؟ چرا من از پنجره پردا نگردی بیرون؟ تا فرده بری سرت این جنازه ببینیم اگه نمیشناس همهش تو هنوز زندگی ای به چه قیمتی؟ تو به خوهرت چه پیشنادی کردی؟ وقتی اونه نگاه میکنی چی بیدی؟ تو خوشبختی؟ میکنم یه احمق می مثل خودم که بعد از دست دادن عادت نکرد. در بازه میتونی بری ولی هنوز شب تمام نشده هم تم اگه میتونست زودتر رفته بودی حالا نروون تو خونه که یه نفر مرده می ترسم گاهی وقت از خودمم هم زن از دختر دور میشه. زن میره طرف تلفن. دختر جوان با وحشت به زن نگاه میکنه. الو فکرم گرفتنت من این اطراف میچرخم هر موقع اوزا خوب بود یه زنگ دیگه بایم بزن موبایلم روشنه توی خیابان پسر جوان با ماشین به باجه تلفنی میرسه که مرد جوان گوشی به دست دم اون اصداده نگه میداره مرد گوشی رو میذاره با تعجب به ماشین نگاه میکنه راهش رو کش میکنه و میره پسر جوان از توی ماشین به مرد خیره شده مرد با تعجب به پسر نگاه می <تصفيق> دختر جوان میاد طرفی زن حتما می من کی هستم دلیه زندگی منم وقتی دوچارش بشید دیگه تمومی نداره این تو نیستی که انجام میدی اون کار که تو رو میخواد میبردت ما تو اسم تو نپرسیدم من اسم نمیخواد بگی اسمای زیادی تو ذهنم که عذیتم میکنه هیچ کدوم به اسم خودشون صدا نکردم نراحت میشدن اما قبول میکردم رنگ این دیوارو رو که به تراشی همشون یه شعر یادگاری نوشتن این خونه دیگه چیزی نداره که من بخوام دوشت ممونم فقط تا صبح باید صبر کنیم کاش میشه دادم از تو خودشان فرار کنه زن از دختر دور میشه پسر جوان میاد نزدیک ساختمان، نگه میداره پیاده میشه میره طرف در ساختمان زنگ میزنه زن و دختر به همدیگه نگاه میکنن زن میره طرف آیفون. زن گوشی رو برمیداره کیه؟ دروا کنید در وا بیاد بیرون نوازی تو منتظر کسی بودی؟ نه تو منتظر کسی بودی اون تلفه پسر دم در ناراحت زنگ طبقه اولو میزنه در باز میشه پسر از پله ها میره بالا مرد همسایه در آپارتمانش باز میکنه پس هم میشه دمه در اپرتمانی طبقه هی سی بوم باید باید باید باید باید باید باید بیبری. پسر با سیلی مزده که چودک زن جوان و اونو پرس میکنه بیبر. پسر به سرعت میره طرف بله ها دختر به زن جوان نگاه میکنه یه نگاه به پسر کجا داری میری؟ میدین کیه؟ بلش کنم یه بریم تو همون هستی که مهمونی رو لوده دی چرا بهش نمیگی آره آره من بودم دلم نمیخواستم مهمونی رو بری منی نگفتی بیام دنبالت. این زخم چیزی نیست دیگه برو. برای امشب کافی قولت وایسا. توی این خونه یه نفر مرده. من زیاد دروغ گفتم. بازم میگم که تو گیر نکنی دختر اومده توی تراس ایستاده کنار ملافی آویزان معلق در هوا زن توی اتا خواب رو تخت بیدار دراز کشیده دختر آروم در رو باز میکنه میاد بیرون از پله میاد پایین میرسه به خیابان صبح شده دم در ساختمان با میسته به ساختمان نگاه میکنه آرام آرام را میفته با از اونجا دور میشه ماشینری توی خیابان در حال حرکت هم. زن از پشت پنجره داره به دختر نگاه میکنه یه ماشین کنار دختر نگاه می دختر بالگت به ماشین میکوبه ماشین از دختر دور میشه دختر در و ناتوان به رفتن ماشین نگاه عزیزان این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی نوروزی، روزی، کنندگی آقای فرشاد آزرنیا و تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما تقدیم شد تا فرصت دیگر خدا نگهدار